حکایت اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بصره که حکایت همین کرد که وقتی در بیابانی راه گم کرده بودم و از زاد معنی چیزی با من نمانده و دل بر حلاک نهاده که همین آگاه کیسه یافتم پر مرواری، هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریان است باز آن تلخی و نومیدی که معلوم کردم مروارید است در بیابان خشک و ریگ روان تشنه را در دهان چه دور چه صدف مرد بیتوش کوفته از پای بر کمربند او چه زر چه خذف.